الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و علی سید و الله, الله و اللهم شد که یک نقطهی که ایک نمیزم که این روایت که احن من گفتم که خودش رو قیر مبش معلوم نیست یه تبری داره در کتاب مکارمل اخلاق بوده که در کتاب کافی هم نیست که این صاحب من منشیه کردم اگر حالا رو قابل قبول باشه معلو شیعه بوده که اون دستش باششن دیه اینم استات معثبت. بود که در باغ ۶65 گرده از باغ آدابال حمام موم صبر بخورن در استهباق قص مازاد عن قبضته من اللحیه. روایات قبضه که حالا خیلی مشهورن هست ما یه ارزی کردیم که مجموعه روات باب یکیش اولش مرسله که در کتاب ابن عبیومه بود که دیروز شرحی داده شد خیلی هم حالا مله نوحقی گفت که این معصوم نباشه برای جیان در این روایت مازاد عن قبضه داره خلاصه لغوی و طلا چیه تو روایت بعضی که مصنده از محلب نخونه ایست مازاد انرقمزه البته ان با علا هر میکنه یعنی این طور نیست که به معنای لغوی یکی باشه حالا دیشون اینجا خیلی تأثیر اون رو نداره خیلی وارد بحث هایی زرافت های بحث معنای حرفیش نمیشیم جوی دیگه شد حدیث سومی که بود که ما احتمال دادیم لزا حدیث یکی باشه. فقط حدیث ابن عبی عمر هم در سندش به خاطر اون بیرخواه پرازدن خلدی پیدا شده هم در متنش به لذا بعد خود ایشون کلمه یعنی اللهی را اضافه کرده اصولاً من از دارم بعد از دست از کردم شواهد نشون میده که مرهوم عبران هاشم اون نسخه ابن عبی عمر که بعد از زندان شون تحلیف کردن نقل کرده چون نسخه توش سخت داشته بعدی سخت ها داشته ظاهرا ایشان اون نصفه را آورده بردن قطعا اون کتاب که اسمش نواده بوده مخصوصا نواده را ایشان اصلا اوصافش معین شیش جل بوده صدوق هم جا جا بز جا میگه نگه افینواده را که قطعا اینکه که از کتاب های مشهور در اون زمان در قم و بعد در حوضه های را میده و مرهومه ابو غالب زراری هم در شهر خودش شیش جلدو میگه صفه اعزا از کتابهای بسیار معروفه حدیث شماره 3 عن عده من اصحابنا مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علی به هر حال این روشنه که این حدیث در قوم معروف بوده مازاد ارد من الله یعنی ان قبض یا علال حدیث شماره 3 رو مرحوم کلینی آن اجداد من اصحابنا آن احمدان نعمه عبدالله کی پسر احمد بن بن سعد، دیروز علامه چند مورد روایت داریم از این آقا که برقی ازش نگرفتیم. بعضا اسمش کامل، آمده علی بن اصحاب بن عبدالله نبود، شما نجاش اسمش بود و علی سقه هم هز از ایشان از اشاهره قومه از سر اشاهره قوم به لطره حال نقص خوبی داشت چون عرب زبان بوده برای نقل انتقال میراث های اهل بید چه یه موثری بود انه یونوس یونوس این در یونس یونوس ابن عبدالرحمن برمیگرده اما خب یونس ابن یعبوب هم احتمالش هست بطره ظاهرا هم همون یونس ابن عبدالرحمن باشه و شواهد حاکیست که این نسخه از کتاب یونس، نه این نسخه ما الان خیلی نمی‌شناسیم. این هم در قم بوده، مرحوم برقی است، یکی از اشاعره از, از یونس و چون یونس در بغداد بوده و به قم هم ازش این آقای علی بن اسحا مثلا به بغداد سفری کردن به عراق و کتاب یونس رو هم آورده. ان بعض اصحاب ان علی عبدالله علیه السلام فی قدر الیه قال حق بذبیله که علی الیه اینجا علا آمده صبح و تجز و مافضل روی ریش حالا انشاءالله بعدم روشن میشه آیا از زیر لب ریشه پس انسان زیر لب دستش فکر داره زاید برقبضه رو ببره یا نه از زیر چانه ریشه که در اون دبایت داشتونه او سه بار سه بار از زیر چانه یعنی چانه شو بگیره زاید برقبضه رو به اصطلاح ببرده اینشاءالله بعدم از نو محمد ابن علی ابن حسین مرحوم شیخ صدوق رزم الله علی از این باید مشکل داره اما به خاطر ارسالی یونوس لیکن احتمال داره که مرحوم یونوس مثلا اینطوری بوده مثل ماها داره میگه از شده این طور نراشده به خاطر وضوح امر پیشی چند برحال فعلا این حدیث به این نهم جایی ما نداره منحصر به همین یونوس مرموم صدوق میگه قال قال از صادق علیه السلام و ذکر الحدیث ایشون از همینجا آورده آلتاق به زبیر اگه علیه یا تجزه ما این البته عرض کردم من گایی اوقات بعضی از روایات در محیط خوب معروف بود کتابهاش موجود اما ظالمه هم همینطوره یه از معروف مشهور. دیگه صدوق وقتی نقل میکرده میشناهدن اهل فضل میدونستن در این ستا روایتی که اینجا آمده صدوق سه و دو رو نعبیل کرده حرام سه و دو رو نعبیل کرده خب این نشان می‌ده که این درقوم معروف هم بوده یکی چونجایی قدر متعلقه ما کتاب برقیه از کتاب هم درده هم کتاب ابن عمره که هم درقوم معروف بوده یکی هم از آثار وشا چون وشا خودش هم تعلیق در را روی هست آثار وشا هم به قوم آمده هم به طریق صحیح آمده هم به طریق زریف آمده این طریقی که اینجاز دو تا ترده اشکال اما به طریق صحیح هم به قوم آمده آثار وشا این مجموعه این سه بعد یک رواسی دیگری ایشان نقل کرده و ختام ان محمد بن علی ماجلیوی ای استاد ایشان از کل این محمد پسر اون علی بن محمده این دو سودی ای یکی گفتیم که مرهمه کلنیه علی بن محمد این محمد بن علی پسر اون علی بن است که استاد کلنیه ان محمد بن یحیی که از مشایخ معروفه ان محمد بن احمد صاحب نوازرالحکمه حکمت. این طریق از کتاب حکمت که در قوم هم مشهور بوده ان سهلد زیاد سهلد زیاد ده ده شده سهل ابن زیاد سهل ابن زیاد در مشکل پیمه در برسه خوب تردیلی شده خوصا رو باید گیرستن سهل مرحوم ابن الولی تردیل استثناج هنده ان جعفر ابن محمد ابن بشکا این الان ما نمیشنسید وقتی میگه اینده میشناسیم گاهی اوقات اینجوریه دقیقا حتی ممکنه خصوصیات اسمیشو هم ندونیم الان ما در کتب عربعی که در کتب عربعی نیزیم رو اما در کتب عربعی که سردی یک طرف خسته باشه کرده باشه، ایشون هم از دهگاب نقل کرده باشه در کتب عربعی چارپنج رو باید داریم و در این مقدار ببایدگی در کتب یعنی به اصطلاح سهل و جعفر و بعدم دهوان با همین ایستان داریم توی کافی هم داره تردید تو بعضیش هم جعفر بن محمد ابن بشا که اینجام هست بعضیش هم جعفر بن محمد ابن تو بعضیش هم از جعفر بن محمد ابن یسان این نصره از که آن آیوم ای کتاب رجال آرخوی خدمتشون باشه در جلد جلدشان آقای خوی هر چار عنوان رو اوبردن استاد هر سه عنوان رو اوبردن این آقای مهای یادداشت داشت بکنن که داهرن این سه نفر یکی هست جعفر محمد بشار و بشیر و یسا به احتمالا که که از جعفر محمد دیگه هم میکنه شخص دیگری باشه اصلاً این بشار اسم چه از نیست مثلا ممکنه به اسم عبی حبدالله جعفر باشه یک اسم دیگری باشه حال فعلا آشنایی نداریم با که چون دهغان کتاب داشته و از آن کوفه هم هست همچی به ذهن ما میاد صعبه زولای دهغان واسطی واسطی همه میراس جرکوها باشه این جعفر بن محمد بن بشار واسطه از بین سر و میراس دهغان احتمال اصلش اون باشه چون سر خودش از کلم که سر خودش تعلیفه تعلیف داره اما خودش از امام رواست نداره ناقل میراساز یعنی ان درست درسته نمی منصول است، واسطیست ان عبدالعلا مولا آلسان چون سند خرابی داره یه خیلی رو عبدالعلا مولا آلسان توضیحات فرابانی ارزی نمی کنید ان عبدالله علیه السلام قال یعطب را عقل رجل فی سلاس فی طول لحیته وفی نقش خاتمه و في كنيته توجه ميم هست. اولستون دليل عقل موصل. آدم میینه کی فرستاده؟ مثلا کسی میسه مثل خونه یکی کسی. که واسط شخصیت اون واسطه تاثیر داره در واسطه که اون شید. این به معنیات که راستی نداره به قضیه. البته جون گفته عقول از ظواهر ابن المراد يستدل على العقل بدون اللاهم و اتهله کن فتول. یعنی بلند نباشه. اما توش قضیه نداره. حالا بعضی‌ها خیلی بلند و بلند مثلا که خیلی دیگه حالات چون بعضی واقعاً مثلا یک بلندگی غیر طبیعی میشه به حال این روایت چهارم ایشان با عنوان بابه ایشان نمیخوره نهایت یاد طول بلند خوب نیست اما قزره تو شعر نمیاد بیسرش میشه مثلا در ذهن نیست خیلی متوجه باید چون هم ضعف هم داره خیلی هم دیگه روش دستر. چون خود محمد بن علی ماجری درستی نداره سهل زیاد مشکل داره جعفل به محمد ابن بشاه یه نکته رو من عرض بکنم خدمتتون، خود من علاقه می نه که به که حال این روات، حتی اونهایی که تعبیر تون درش و کار برده شده ما با ملایمن قالب یعنی با تعابیر احترام با ادب صحبت میکنیم هر از که الان در میان اهل سنت ادی هستن خیلی تون دهن دیگه هتی هرکای رکی که اما در مقابل مثلا بخاری خیلی مؤدبه معروف در کتاب رجالش تاریخ‌گیریش به اصطلاح تون تعبیری که داره تون ترینیاردی نداره ترکو یعنی علما ازش سرنمی این دیگه یعنی تون ترین بخاری کار کار خوبیه حالا این بخاری یه عده‌ها رأی شارع رو از بی عده‌ها هم یاد می‌گیره شده در امسال بخاری توم شدن الان سرنمیات مثلا احمد اچری گفته شعر عربی بریکس بر یا کزز سخته اون دیاره بیگه بیسر مثلا کذب یا فلا علا به همین مقدار تعبیر میکن مشکله یا اوشد نیست ممکنه کسایی ایگه تونتر نرشته باشه هم جعفر ابن محمد ابن بشار هم نجاشی تضعیفش کرده و عبدالعلا مولا آلسان محل کلام هست احتمالا همین عبدالعلا سر برادر زراره باشه به هر حال علا بحث طبایتری داره که جایش اینجا هست. این روایت هم که نخشی نداره این پس ما کلن در این باب این در کتب ارمعه سه تا روایت داریم که اگر اون روایت اول و دوم یکی باشه در حکر دو تا روایت میشه یه روایت هم در جعفریات آمده این کل روایتی که ما در قبضه داریم وقت به لحاظ سندی هم روشن شد یعنی بحث رجالیش حدیث اول ارسال داره ارسال هم از نبی عمر نیست حدیث دوم دو فرسوین صالحه حماد داره که مشکل معلم محمد داره که مشکل معلم خونیس داره که مشکل. اون حدیث دوم دو هم مشکلات سندی داره حدیث شماره سه هم بعض اصحابه داره یونوس هم بعض اصحابه که اون هم مشکل سنوی درست میکنه هر به صدوق هم اوورده که هر داره مرسل اوورده اون هم که دیگه ظاهرش به همه که به اشتحار در خون اکتفا کرده این راجه به این دو سره آیستی در ما ما تابعا چند ماه پیش عرض کردیم حالا اینجا چون تایفه واحده است من صحبت بکنم ما یک راههای مثلا این راه که منظورمیره چنده راهایی که استعاره شده تحلیل هستی نوشتیم میتونیم داشته باشیم واضیه روایات و این تحلیل فهرستی از زوایای مختلفیه هرگز الان فقط یک کتاب مثلا ما میتونیم بر روایات مثلا جایی که روایات الان اینجا چون روایت کلیدی نیست اما من اینجا بحثش رو فهم می‌کنم اما در خیلی جا تو روایات فقه حواد در صلوات بدها در صلوات دیگه هر صلوات در باب حجت و ائمه علیهم السلام هست در روایت فق در ابواب که قابل اعتناست مثلا عقلالحیزواکثرو هست فلان هست تقسیم استهاد وحیز و هست. ما ابواب مختلف دریم که روایتش انصافا باید کاملا حلاجی بشه وقت این طریقه حلاجی یکی همین طریقه رالي بود که الان حلاجی کردیم فتیم که روایات البته همهش انتور نست لا همهشم ضعیف بوده، بعضیشم معتبر میدونن مثلا مین مرسل یونوس قابل اعتماد که در کتاب نبی قابل اعتمادیم از اینجور که قطعاً درست باشه ما به اصطلاح خودمون که حالا پرس کنیم اسمشن ادعا خودمون یه نوع مثل چون هست به اصطلاح منحنی درست می کنیم. یه جدول درست کردیم برای آشنایی با مثلا حدیث و بلکه مطلب معارف منقول ما اخصاص به حدیث هم مذارب پس در جا دیگر می هم. مثلا هر در این موضوع که مسئله قبضه باشه در, در این موضوع ما یه جدوری این موضوع رو اولا مثلا در اهل سنت ارز که این قبضه در روحات اهل سنت در روحات موامنتون رسول الله نسبت داده داشت میتونیم یک اصطلاح حالت جدور که اسمش رو این تحقیقی تاریخی یه موضوع یا نمودار تحقیقی تاریخی برای این روایات درست بکنیم این نحره تحلیل که این نهره تحریل فهرسی میتونه کارگوشن باشه یعنی دقیقا میتونه نقطه اشکال روشن بکنه که اشکال در کجاست و بعد هم میتونه سر اینکه که قبول بکنیم یا نکنیم رو واضح بکنه ببینید ما روایاتی که داریم در اینجا یکیش همون جعفریاته که از امیر المؤمنین به اصناد رسول الله هم نی ارز کردیم ما بهترین فرض قصه این است که این کتاب را قضای را و احکام باشه این بهترین فرض بسن. اگر این کتاب باشه این کتاب حالا دقیقا ما نمیدونیم ظاهرا بعد از آمدن ازتعمیر به کوفه مطرح شده ما میتونیم یک تاریخ اینجوری بنم فر این کتاب و بعد انتشار کتاب چون بعد منحله اشتهار کتاب مثلا بگیم بین سالهای سی تا شست وهفتاد در کوفه حالا اگر این جعفر اون بود در این نمودار نحله کار در نمودار این انجام شد ما چکار میکنیم یک خود کتاب معلف کتاب توزیع معلم، توزیع خود کتاب به شالیده دو کیفیت وصول کتاب به ما یا کیفیت به وصول ریوایتی اینا رو از این زاویه مثلا اگر فرض کردیم حالا احسن خروز اینه که این کتابا قضای رسولان و احکام باشه. بسید این هم مجموعه نوشتارش امسال سی تا شسته افتاد باشه. چون به بعض اصحاب عنیر مومین هم نسبت داده شده اشکالا توی اول صحبته بوده. یک خود کتاب امس کردم شواهر ما نشون میده که از زمان امام سادف تقریبا این کتاب محجور شده بین اصحاب ما. حالا علتش چیه وضعش چیه نمیدونم؟ یه احتمال البته خیلی دفاع کرده من همینم احتمال موقعیتی غیر این یعنی بده اون زود یعنی خیلی زودی یعنی یقین بده اون خیلی زودی یقین بده یه احتمال اینکه این کتاب مصدر علمی زیریها شد چون در مدینه در آنم مصادر عبدالله بن عبدالله بن به اصطلاح نقی امام مشهداست عمرانم نه فقط از امام صادق بزرگتره، از امام باقر هم بزرگتره. نه فقط از امام صادق. از پدر امام صادق هم بزرگتره. یکن اولین نویه هزارها از هز سرمید که از برخی نبها بزرگتر، پدرش پسر امام مشهور و مادرش دختر سید شده. عمران هم برای نجاد از امام باقر بزرگتر می‌، ولی بهش مخفی می‌گفته. حضرت باقر به عکس پدرشون پسر سید شده، سر مادرشون دختر ما هستند. و امام باقی مستعده پنجه و هفت این قبل از پنجه هفت خب زیدیها ها بعد از مثلا شهادت زید بیشترین توجه این به اصطلاح روزی ما خط انقلابی خط انقلابی که در شیعیان بود در اهل بگو در مقابل اوموی ها این در مدینه در عبدالله معز و بعد پسرش محمد نصد زکیه بعد از اصطلاح شهاد کمدت محمد خب خیلی چون سر می کنند که این محمد قائم است و خودش اسم محمد دو سرشان عبدالله بود و در کتاب کتاب مثل کتاب مقاتل و طالبی که مال عوض فرج اسفانی است که اقوانی اوان، ایشون زیدی مسلکه و در کتابی هست مال عبو طالب این کتاب ها همه مال قرمه چارم و پنجمه کتاب های معتولی است ایشون هم زیدی عبو طالب امام ابو طالب به من از زیدی ها سن در این دو کتاب کتاب درونه علی ifade فی به لعمت الساده که ائمه ای زیدی رو از زبان خودشون نوشتن. خودشون زایمه ای زیدی ها ابو طالب در این دو کتاب زیدی میخوام اهمیت انقلاب محمد بن زکی و حرکتی که کرد در این دو کتاب نوشتن که موسی بن جعفر هم در ارتش علی محمد قیام کردین. فکر نمیکنم ثابت بشه ما شاهیدیم که علی امام سن بعد از ایشون انشاءالله قیام میسید کرده. علایه حاله در دو مفتر زدی که هر دو مفتر بسیار قدیم هم هستن و مخصوصان این که در مقاتل جوز کتاب مشروبیه. در اونجا داره که خود موسیم جعفر با محمد نزدیکی قیام کرد البته خب قیام شکست خود این اون کنار کشیدن و هر حال در روایات ما هم معلوم میشه که روی عنوان امام کازم و عنوان که قیام به سیف بشه و عنوان که مثلا در مقابله مثلا خلیفه اون زمانی که اگر این هیام درست باشه زمان در مقابل منصوره اما اشتهار ایشان در قیامشون زندان هاتون زمان هارونه بعد از منصورم هادیه بعد از هادی مهدیه بعد به اصطلاح بعد, بعد از منصور مهدیه بعد هادیه بعد هم هارون شهادت امام کازم در زمان هارونه این اجمال هست که انسان احساس میکنه اصلاحاً موسد جعفه اون حالت مثلا اجتماعی و قیامو انقلابشون نسبت به مام باقر و امام صادق مثلا بیشتر بوده علی حاله میخوام میخام بگم وضع زیدیه اینجور بود وخ زیدیه در میراث علمیشون به این کتاب استناد میکردن اصلا اسم رو کتاب علی میگفتن دقت میکني حالا آیا سرش این بوده یوهتنن من چون فاصله زمانی زیاده مسادری هم که موجود در خیلی کمه خیلی با رحیمینه کنیم خود از خود چند تا مطلب اضافه بکنید تا این نگیرو بگیریدگرسنگه این شاید خیلی مشكله درکنه پس این کتاب فی نفس یه مقدار شبهات خواهد هست. معلف حقیقیش مرحوم نجاشی دو تا نفر اسم برده مؤلف حقیقی او روشن نیست که مال کیه و طریقی هم که به ما رسیده این راجی به خود کتاب طریقی هم که به ما رسیده از راه میراث‌های های مصری به ما رسیده جعفریات جزو میراث‌های های مصری ما که در افتدای قرن شهاران بوده بعد هم باز در خود کتاب با این که به بغداد آمده باز از راه بغدادی ها به ما نرسیده اولین بار توسطی که از سنیه ها به مرحوم ست هزار آمدی ایشو که فکرم میکنم این قطعه تو این کتاب نیست که ها در سال قرن سیزده هجری هیجری نسخی از هیج میاد که ما الان راهمون اینه بینید این روشن شد این نموندار یعنی اگر ما بخویم از زمان خود اون تا اون کتاب برسید خیلی پیچ و داره و خیلی ابهام داره از قرن سیزده تا قرن چهارون تازه از قرن چهارون رفته مصر دو سه طبقش در مصر خو را دیگه مونثه جهات لذا در این نمودار هم وضع کتاب و هم کیفیت استناد واضح شد. ما یک اصطلاحی داریم که نه این دلیل که سیامی به نظر ما برای احادیث ما نمیخوام میگم اهل سنت چون اهل سنت این کارا رو نداره کارای فهرستی این معنی ما ندارن این تحلیل فهرستیه ما یک داویش این اینطوریه چون زوایای متعدد داره طبق این تحلیل ما ما آمدیم مصادر حدیث رو به سه بحش تقسیم کردیم این خیلی نافعه نافع ن گفته نشده ما هر سال دو سه بار لاقل میگیم ه پنج شیش ما بار با اینکه بحسشهم خیل مهم زادعنا قبله بحث مهم نیست بحث من سر حدیث نه این روایت بخصوس ما آمدیم یه مصادر اولیه اسم بردیم یه مسادر میانه یه مصادر متعخر این در فرهنگ ما موسر در سنیا تاثیر نداره اما تون فرهنگ ما موسر صحبت چون سنی ها رفتن بحث رجالی کردن رو راوی نگاه کردن ما چون تحلیل فهرست این کلمه یه تحلیل رو هم من توضیح بدن من ارز کردم اینا از سال ساد و پنجاه فرسون بیداری و که ما الان سال ساد و هستیم این آقا یک مطلبی رو از رسول الله نقره کرده ما خودمون رو چطور از الان به زمان رسول الله برسنیم برسن. این رو سال چیکار و سوال خب مجموعه کارهای علمی من اسم این مجموعه کارهای علمی که حالا بعد از ها تدوین رجال شد پس زمینه بحث بحثه و اصولی شد محسل باشه محسل نباشه مجموعه این کارها و این حرکت علمی که میخواد این ربط رو درست بکنه یا درست نکنه یا تبدیل ایجاد بکنه مجموعه اسم این تحلیل اسم این تحلیل در نظر ما این اصطلاع بنده است این تحلیل رو هم از خیلی دو جوره یه دفعه میاد تو این مجموعه کارهای رو وباس حساب میکنه اسمش بودش این تحلیل رجالی یه دفعه می‌یا رو ها و مسادر حساب میکنه اسمش این تحلیل فهرستی بچه‌ها اینا اصطلاح بنده خدا جای نبود استان داره این اصطلاح رو وقتی خب این در حساب برای این که این تحلیل فهرستی در شیعه این تحلیل از سنی‌ها نیست اونام دارن شدیه نیمخواهم بگم ندارن اما رجالی بحث کردن مثلا آمدن گفتن پنج شرابی از زوحی این حدیث کردن این زبیه توش داره یکی نرد کرده نداره این هم شبیه ما دارن اما رو راضی رفتن دقیق کردن ما رو, رو... کتب به ما سننفاد رسید کتاب دامهش بستی میست که کتاب دامهش بستی میست طبیعتا دیگه باید اونوقات مشکل با با خب ها مشکلش ما توریه شده دو کنش ما تا تشمه بودیم اون 150 سال رو شیعه با کلام حلش کرد حجیت اقوال به بانوان اسمه و نظام من همیشه از کده مثلا ما با اهل سنت دو من هشت داریم از ما وقتی که موجود بهتر جالیل و رسیب بیشتر از قرن سوم شد سال دیوی اصحاب ما از زمان امام صادق صالح مشکل مشکل مشه نداشد چون امام و صالح رسول ها ولی اگر دقت بکنید هی در روایات از کلمات اصلا که ما یقینی هم اونا زنی ها. این کلمه اصول ما رو اصول عقاید این حل کردیم اونا رو اصول فکر حل کرده خسن ما این فاصله رو رو اصول عقاید حل کردیم میرا ولی از من، سایز یاد ندارم شما مناهج بحث ما با اهل سنت فرق میکنه اصلا اشتباه نکنه ما 150 سال با اصول فقه کردیم با اصول عقلی حل کردیم اونا 150 سال رو با اصول فقه حل کردن ما با بحث اسمت اله حل کردیم اونا با وجوه خبروارد حل کردن و لازم شما این سوالو میپرنید دو منهاج به ما اشکال وارد نمیشه اصحاب ما از قرن دوم شروع کردن که این نسخه مال حریض هست حریض ربی عبدالله اینجوری برسیدن اونا از سال صدفنجه رو دیگه ربا رسول الله هستیدن و توضیح دادیم چون صحابه ننوشتن تو دقت بکنیم الا قلیلی از صحابه. تازه اون نوشتن خیلی من. من همه کلام و قلقه از کلم در میان کتارهای موجودی که من تا دیدم یک کتابی از دراساتم در حدیث النبوی مال که از این معاصرینه. احتمالاً هندیاله اعظم باشه، ظاهرا اعظم مصطفی محمد مصطفی آلبن. محمد حسن آلبن، چه اسمش رو یاد نمیرم. نوشته، بخولو جایزه گرفته. انصافاً خیلی زحمت کشیده. انصافاً کتاب خوبیه. هم داره، البته اشتباحاتش لغت اهل سنت یابنده دو بشه. ایشون کرده مثلا خیلی زحمت بین اساتید دیگران اهل ناگفته گیر بازدیدشون تو حدود 130 تا 120 تا صحابه رو اثبات بکنی که نوشتار باشه. اونا یک جز اکسل رو نوشتار یکو. حالا ما از هم ما راحت از صحابه ما رو نوشتار هم کلمه. اونا الان دیگه گفتن که صحابه رو اثبات بکنه نوشتار داشته. این هم کلام درستین. زحمت زیاد کشیدم. تمام آره اون فرضمون علینه که اینجا درست باشه قطعاً اون نوشتارها وجود نداره. ما توضیح فنی داریم. که اهل سنت مجبور بودن تحلیل رجالی بکنن چون نوشتار نوشت اگر صحابه نوشته داشتن فرسون عمر نوشت داشت عبو بک داشت عثمان داشت علی داشت همه این صحابه در طعا بحث اونا خیلسته میشون در طعا خیلسته بیان بگن این مطلبی که در کفاق عمر هست این نسخه درسته؟ درسته کی نقل کرده؟ این نسخه بدرش چیه؟ لذره ها چند تا نسخه ای که دارن نوشتار نوش بحث خلا خوب بحث سر انصافن زحمت دار کشیدن نوشتارشون کمه چون نوشتارشون کمه رفته و تحریف رجالی و الا اونام تحریف هایی هست اما کمه من بخوام این باز وقتم تموم شد میخوام این مبانی خودم رو شرح شد مبانی ما ما اومدیم برای یک روایت کاملا تدوین بشه سه مرحله برای مصادر قرار داریم. مصادر اولییه مراد ما از مساله کسانی که زمان امام علی ع را میشناسن که غالبا زمان امام باقر بوده امام صادق این زمان امام صادق حتی اگر امام کاظم میشده باشه قرمونش مسائل متوسطه مصادر اینه یعنی که از ما امام... که مشهور این مسائل مثلا کتب حسینی سعید چون از اولیه گرفته مثل حسن مهدو مثل کتاب های احمد مثل علیم مثل محمد نیسا مثل کتاب های علی بن معنیا مثل کتاب های محمد بن سنا معروف تو این مال خطه بلوگ اونا این خطه بود. مسادر متأخر هم در اسم... که مسادر متوسط آلوان بین سال دویستا تا هستن یعنی قرن سرم اوچند مسادر اولیه قرن اول و دوم، این اسمش مسادر اولیه مسادر مت... میانه قرن دو و سرم ابن از سال دویست تا سال سیست مسادر متاخرم در اصطلاح ما سیصد به برد که مثل آقه باردش کابیه تحضیبه استفساره فقیله کتبی که در این بین سیصد تا چهار ست چهار ست شده این رو ما از چیزی بیجیم خوب دغزنده. ما حلیس در تحلیل فهرستی خودمون تو این سیر تاریخی تو این جرد تاریخیش برسیدی کنیم حالا مثلا ما بکنیم. با باید تطویق بک حدیث اولی که امروز خوندید که از کتاب جعفریات بود این مصدر اگر داشته باشه مصدر اولیش احتمالا کتاب قضایه بسنن مصدر سانویش چیه به دست ما نرسیده مصدر متاخرش جعفریاته این در قرن چهارون در مصر باز دیگه در میان میراس های ما نیست تا قرن سیزه هم همون نسخه در قرن سیزه برای ما آورده در قرن پس مصدر اولیش اگر درست باشه بین سالهای سی تا شد هفتاده مصدر سانویش بین سا متأخرش سالهای سی مثلا تا سی سد و که دیگه مصدر دیگه ما فقط همین دو مصدر داره اونم هر دو یکیش یقینیه که در جرفتیه یکی احتمالیه اونم واضحه چون نه مصدر سا رو خب اگر این باشه الان اون که داری که نصفت میتونیم داریم این تا حدیثی که امروز من خوندم یکی اولش امن ام اخبر امن عبی عبدالله فقط این مسئله اولیش واضح نیست حدیث بعدی که خوندیم معلب نخونه است ان عبی عبدالله. این اگر احتمالاً مسئله اولیش باشه کتاب معلب نخونه است مشکل اولاً قیلی از اینجا خود و این ارزیابی ما خود معلم نخونه صدیف شده که نجا چیز فرمونده خود این کتاب هم خیلی پیش ما عنوش واضح نیست اونی شمه رجال و تهرستی مفصلی میخواد که جاش اینجا نیست و هر حال غیر ضعف خود معلم خود کتاب هم این نوع امه که من الان دخل میخواد توضیح بدم که روایت سوم هم یونوس هم بعض اینجا هم عوی عبدالله اینجا هم مستر اولش واضح نیست بعد هم خ طبیعتا بحثونه فعلا چون این روش بحث و الان اروپایی‌ها قبول دارن ما فرض میگذاریم در صحت تا معلم نگونه خوب دقت بکنید نگید این رو باید تا معلم نگونه ضعیفه یعنی به عبارت دیگر وقتی ما مصدر اولی رو می‌گیم ولو مصدر احتمالی خوب دقت بکنید چوری ذی فرصت اینجوری میگم من اون پس در اینجا سه تا روایت هست. دو تاش که مرسله که مصدرش معلوم نیست دو تاش که مرسله یه تیش ای معلم ای غیر از این که مشکلی که این روایت داره حالا غیر از ای این که مستر محتمله خود کتاب و معلا روشن نداره خود معلا هم روشن نداره. پس در مصادر اولیه متاسفانه در کل این چهار تا روایت مشکل داره روشن شد ما میگم کجاها میشه انسان قد مصادر میانه اون روایتی که اول گفتم مرسله در کتاب ابن عبیومه بوده نسخه ای وای ماهشانه انصافا جزء مصادر بسیار محترمه این محترم میانه ده اثر حلیدی بی ترافات ابن عبیومه بعد از سالای دیویس انصافا جزء مصادر بسیار خوب ماست ابن عبیومه جزء اجلای اصحاب نه صفات جزء اجلای اصحاب جزء اعیمه شانه به قول از دهده حضرت عز سنت در شعبه دارن امیر مومین فلحدیس ما هم باید به ابن نبی آمیره امیر مومین فلحدیس گفتن نسخه یه که از این مصدر هست نسخه یه نسخه خوبیه همین نسخه هم در درقام معروف شده پس مستر میانه شده خوبه این که مثلا چطور ادهی از اصحاب اعتماد میکن از این یواشه شوشند شد شو؟ مستر اولی نبود. اما مصدر میانش کاملا واضحه کاملا واضحه هم مؤلفش، هم کتابش هم طریقش کاملا واضحه مصدر کتاب دوم ما حدیث دوم ما چون دو نفر از وشعا نهار کردن به احتمال بسیار بسیار قوی از کتاب وشعا کتاب وشعا ما وقتی میگیم از میراث وشعا چه خود تألیف وشعا باشه چه وشعا نقل کرده علی ابن به در ساحه حس... علی ابن حسن بشا بله حسن علی وشا هستند و دهلیه بشا جزو بزرگان ما جزو اهمه و جز که از کسانی است که میراث های ما انتقال میراث های ما از کوفه مدیون ایشانه یعنی خود احمد اشعری که وقت کوفه یه مقدار میراث ها رو از همین بشا گرفته و بود بسیار مرد بزرگوار مرد جلیوغر قابل اعتماد این مستر میانه ما هم خیلی خوبیه مشکل فقط کجاست مرحوم کلینی به دو طریق ازش نهار کرد یکی صالحه مردی هم این هم تضعیف داره از روشنی نداره یکی هم معلم محمد تو اون هم ورزه روشنی, روشنی نداره پس این مستر میانه ما خود مستر و معلف خوب فرید مایی که میبان داره این مصدر دوبه میانه ما مصدر ثبوت میانه ما به احتمال بسیار بسیار قوی کتاب این هر بسیار اتفاق خوبیه خود یونوس فوق علاقه و قدره مشکل این مصدر وجود علیه ابن اصحابه نسترده که نسخه مشهوری از کتاب یونوس نیست چون یونوس پنشیش طریق لاقل در کتاب ما بیادن بیشتر در قومی ها نستاد کتاب یونوس داشتن این خیلی طریق معروفی به کتاب نیست برا؟ الان پس بنابراین انصافاً بلا و الان مثلا احمد نبی عبدالله برقی احمد برمی خوبه یک کمی متصاحب در حدیث هست اما خوبه طریق ما هم به ایشان خوبه پس انصاف قضیه این حدیث مبارک در مستر میان وضع خوبی داره که بهترین ایشون ابن نبی این محضر دوم چند مسادر میانه ماشون، مسادر اولی ما گیرش مسادر میانه ما خوبه خیلی هم خوبه همید متأخر ما اولا کلیمی آورده هر سه حدیثون که خب خبه انجازو واقعا نهی ها سهب بوده هم بگم واقعا کتاب کلیمی که خیلی زحمت کشیده و فوق العاده مرد بزرگواری و خیلی منقدر کرده یعنی اینقدر چون بعض از ما این احادیث قدیمی جای دیگر می‌بینید یه کمی تشویش داره مثلا خدای نکنه خیال می‌بندونه اون گویا این زخم تسابیل است چی ربط داره خیلی میراث‌ها رو نقین حرم کرده اصلا خودش خیلی نکته‌ی مهمه صافه حضرت عمون عقر بو احادیثنا فهمنا قومن فسحاء ماگر اون فساحت و زیبایی کلماته لو عمل و اثر کلام در این رو تو کتاب کافی که این واضح می‌دینه انصافا این ای که کافیون زهروند داره که کم‌چاپش در جوشه خیلی متون رو و اسانید و واژه‌ها روشن می‌کنه جلالت شأن کلام خدا خدای نگاه کردن کلی رو بلد از بس صاف و روشن و کشنگ و یعنی سعی کنه با هم بهتر احادیث ما رو این که ذعیف نذاره یا چون ذعیف نذاره یا متن صحیح نذاره داره چرا اما این انصافا زحمت فراوانی کشیده شده و بسیار کتاب نقی و جامع و کتاب بسیار مفیل و صحیح و جایی بحث نداره این مستر دوم همه ما هم بسیار مستر خوبیه بعدش هم در کتاب صدو آمده به نحر ارسال این ارسال به نظر من مزر نیست نه این کشون به نظر من از بس این کتاب این حدیث در اون معروف بودیشون نیاز نذکر سنب نیده از بس مشکول هفت چون هم از چون این حدیث رو ایشون قطعاً از میراسایی که در قومه نقل کرده چون حرض کرده مستر میانه که کتاب نبی آمره همون نصر قومه یکی وشای همونه که قومه اردن یکی هم فرصون دیگه یونس اونم که قومه اردن یا خود احمد هم که قومه کاملاً واضحه که این حدیث در قوم مسابر شناخته شده بوده به قطع فرمودی نه چون مراسیل صدوق خجفه نیازی به ذکر سند نمیدیده احتیاج نمیدیده در کتاب های چون تمام دو سه محضر ما میانه ما تمام در قوم بودن این خوب دقت بکنید این حاکی از شهرت این روایت در قوم بوده به کسی که اگه صدومونوزا قال از صادق هم میدونست از یا از کتاب محشاق پس تا اینجا این به نظر من سید تاریخی فشنگی برای از اون روشن شد مسادر اولیش روشنی نه مسادر میانش خیلی عادیه مسادر مترخیرم فوق الادایی بعد زمان بعدیه از قرآن پنجم که فتاوای اصحابه چون که نقل کم داری ما فتاوا هم با همینه و اصلا میگه این شهرت پیدا کرده که ما هم احمد خدالله ها گرفتار کنه حتی پنجم به بعد هم کاملا جواب داده است این دید بناییه ای که من میگم که اول مثلا میگن شهرت یابد یا نه ما اول میگیم تحلیل بکنیم که شهرت کجا هست کجا خرابی داره کجا رونشانی داره تا ما بتونیم اونجا را. پس مشکل اساسی ما در حقیقت اون اول کاره الان مشکل تمام روایات ما هم با نهضتی هم خوب دریافت این که هیچ کدوم اینا از و صادق نیست چون این هم مؤثره در این تحلیل که رسید واسه از ما باغر باشه از مصاد جعل باشه کل روایات ما از امام صادقه غیر از همین حدیث جعفر یعقوب واسه چه ابهام داره غیر از جعفر یعقوب کلا از امام صادقه هست بنابراین با این سیر تاریخی با وجود مصادر میانه بسیار خوب ما ما مسادر بسیار خوب متحصر ما و تلقیه به قبول اصحاب ما و در مسادر خوب اولی ما ابهام داریم نه زهر گفت ان من اخبرم یا ان بعض اصحابی ابهام غیر زهر اینا اینها رو اگه دست دسته هم بگی انصافاً وسوخ به زرایت با این ترتیبی که گفتن پیدا میشه رسال الله این تاریخی حدیث و خوفه خوبه خیلی این که شما این این این های آبشکوره های نمون بسته با که بذار که میگه شهرت های بعدی کارساز می شما چه خراب میشه من مثال میزنم اولی بعدش خراب میشه